بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته باب قول الرجل للصغير يا بني حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبد الملك بن حميد بن أبي غنية عن أبيه عن أبي العجلان المحاربي قال كنت في جيش ابن الزبير فتوفي ابن عم لي، وأوصى بجمل له في سبيل الله فقلت لابنه ادفع الي الجمل فإني في جيش ابن الزبير فقال اذهب بنا إلى ابن عمر حتى نسأله فأتين ابن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إن والدي توفي وأوصى بجمل له في سبيل الله وهذا ابن عمي وهو في جيش ابن الزبير. أفأدفع إليه الجمل؟ قال ابن عمر يا بني إن سبيل الله كل عمل صالح فإن كان والدك إنما أوصى بجمله في سبيل الله عز وجل فإذا رأيت قوما مسلمين يغزون قوما من المشركين فادفع إليهم الجمل فإن هذا وأصحابه في سبيل غلمان قوم أيهم يضع الطابع؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه يجمعين ما بعد فانجه من درس هذا درسي صحيح هذا مفرد من بخاري سدو فانجه باب هذا باب صحيح هذا مفرد من بخاري رحمه الله وغفر له باب قول الرجل للصغير يا بني قول الرجل للصغير شخصي فردی که سن نو بگه ای فرزندم یا بونهی. 284 اثر از آثاری که من بخاری رحمه الله در کتابش یاد میکنه از ابو عجلان محاربی که میگوید کنتو فی جيش ابن الزبير در ارتش عبدالله ابن زبیر بوده میگه فتو في ابن عم و اوصا به جمل الله و فی الله یه فسر اموی من فوت میشه و وصیت میکنه که شطورش در راه الله بدن که پس از مرگش بالاخره پاداشی براش باشه. فقلت لابن اتفع ایل جمل به فرزندش گفتم که اون شطوری که این نیت کرده حالا نظره، حالا وسیعته. اون شطوری که این پدرت وسیعت کرده برای اینکه در راه الله باشه اون شطورش به من بده. چون من دارم جهاد میکنم در صف عبدالله بن زبیر هسته. فا اینی فی جیشی ابن زبیر. من در ارتش دشکر ابن زبیر اصاب فقال اذهب بنایل ابن عمر حتی نساله الان این از یعنی کم سنه سال بود اون بچه این اون شخص جوان بود و جوان بود پدرش فوت شده وصیت کرده الان پسر اموی پدرش اومده مدعی اینه که چون داره جهاد میکنه پس اون مالی که پدرش وصیت کرده که برای جهاد باشه این مستحقشه و باید بهش بده بصره اون کسی که فوت شده میگه که اول بریم نزد عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما اون قضاوت بکنه اون حکم بده فتوا بده چش این رجوع به علم علمای بزرگ خصوصا که راسخینی در علم انسان از هر کسی نباید بپرسه شما درو اون هایی که راسخین در علم فسالو اهل الذکر این کنتم لا تعلمون اهل الذکر اونایی که خصوصا از لحاظ علمی و هم از لحاظ تقوایی به جایگاه والای بالای رسیدن اونهایی که پیشکسوتان در علم من مثال میزنم چون خیلی جاها هست با مثال انسان هوشیاریش بهش برمیگرده چنانچه ما در جلسات گذشته داشتیم رسول الله صلی الله علیه و آله مثال میزد مثلا میگفت که درختی هست مثل مؤمنه اینکه صحابه فکر بزنه الان من مثال میزنم جوانی تازه تحصیل کرده تازه به دوران رسیده میره مدینه لیسانس حدیث میگیره میاد در مورد حدیثی تضعیف میکنه و تصحیح میکنه تو هم حرف و سخنش میشنوی تو هم درایت نداری به علم حدیث مقابل اون البانیه بیش از افتاد سال خدمت حدیثی داشته از تعلیف از تحقیق دویستا اشتاد و اندی تعلیف و تحقیق داشته نزدیک به دویست تا میشه یکی از این تعلیفاتش مثلا سلسله سله بیش از ده جلد صحیح هم همین طور، غیر از ابن حبان. و سحی جامعه، ضعیف جامع، آداب زفاف، والا اینا که یک جلدن یا احکام جنایست و الی آخر از تعریفات بسیاری که شیخ داشتن در راستای خدمت حدیث تا جایی که شیخ باز رحمه الله میگه اگر قرار باشه مجددی در این عصف باشه، البانیه کدوم یک برای منی که عامیم، منی که یا تازه به دونان رسیدم، منی که از علم شرعی آگاهی ندارم یک طلبه تازه به دونان رسیده، یک پیشکسوت این میگه حدیث صحیحه این میگه نه حدیث سئیه فالبنیش اشتباه کرده من نمیدونم نمیتونم قضاوت بکنم. من حدیث نخوندم، من مصلح حدیث نخوندم، رجال نخوندم. کدوم یک باید بربگردم بگردم اینجا. از کدوم یکی پیروی رفیق کنم؟ جوابه علیکم بلا کاور. یه بزرگتر رو بگیرید فالبنی. کسی هست که بگه که اون کوچکتر رو میتونیم بگیریم بیا یا بار بگریم با که کوچکتره. اون که تازه مدرکش رو گرفته. کسی هست کسی نیست که طرفداری بکنه یکی که انسان قوت تشخیص رو داره تمیز داره مشکلی نیست مثلا من در یک حکمی حکم و رو قبول ندارم علم حدیثی آگاهی دارم علم حدیثی درایت دارم رجال رو میدونم میدونم که اینجا البانی این راوی مشکل داره البانی متوجه نشده هر انسانی اشتباه میکنه این درسته که انسان بدانه ولی کی کسی که نمیدونه علیکوم کابر حالت اول اینکه تو بدونی که البانی اشتباه کرده واقعا این حدیث صحیحه یا ضعیفه میدونی اینجا در تصحیح و تضعیف اشتباهات تو علم داری رجال خوندی مصالح حدیث خوندی جرح و تعدیل خوندی اهلیتشو داری این حالت اول حالت دوم اینکه مثال زدیم شخص نمیدونه نه جرح و تعدیل چیه نه رجال هیچی نمیدونه که اهلیتش نداری نه خوندی دیگه باید بکی با بر برگرده به اکابر بزرگا درسته علیکم الکابر حالت سوم الا این تو پرانتز رابطی حاد به اون مسئله تفریح از اون مسئله نداره منم خودم میدونم ولی مدعوین اونایی که دارم باشون حرف میزنم نمیدونن چیز از جرح و تعدید نمیدونن چیز از رجال بیام تو جمع بگم البانی این حدیث اشتباه کرده جمعی که عوام من نمیدونم جمعی که طلبان میدونن یا خوندن بالاخره یا میتونن تحقیق بکنن مسئله فرق میکنن ولی جمعی که عامیان وقتی که من بیام زیر سال رو دارم عالمی و اون عوامم نتونن درکشون نکشه و نرسه نقد من سبب تخریب یک عالم میشه اینو با درش دقیق داشته باشیم کی کجا با و چطور ما حرف بزنیم مخاطب مون کیه آیا اهلیتش دارن ندارن میتونن تحقیق کنن نمیتونن تحقیق کنن بحث چیه من میخوام این قضی رو بر به اون حدیث قبلی یه ای قسمتش این اثاره یه ای قسمت آثار قبلی که خوندیم آثار قبلی توصیه بچی بود توقیر و احترام بزرگتر حفظ جایگاهش، حفظ مقامش، مکانتش اینو باید حواس من توش باشتوش لیس من نمان لم یوکر کبیرنا و در روایتی یجل کبیرنا و در روایتی یعرف حق کبیرنا همی بی ایک معنام یا چندی لفظ ما داشتیم اجلال، تقدیر، احترام، تعظیم، حفظ بزرگ پس از این صورت مسئله مختلف که ما داریم و درس میگیریم از این روایت هایی که این جایمون بخاری برای ما گلچین کرده میگه فعت ابن عمر عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما فقال يا اب عبد الرحمن اون شخص میاد عبدالله ابن عمر رو با کنیه گفتیم از باب احترام شخص با اسمش صدا زده نمیشه حسین وقتی که شخصی سن و سالی ازش رفته با کنیه صدا زده میشه از باب احترام ای ابو عبد الرحمن ان والدي توفي پدرم فوت شده و او صاحب بجمل له في سبيل الله وصیت کرده که شتورش در راه الله ما بدیم و هذا ابن عمي و اینم پسرم و من و هو في جيش ابن الزبير اینم در ارتش لشکره عبدالله ابن زبیره آیا ادفع عليه الجمل شتورم را بهش بدم مجوز شرعی داره درست این بکنم قال عبدالله بن عمر یا ابني ای فرزندم ان سبیل الله کل عمل صالح دره الله هر عمل صالحية عمل صالح واشه يعني عمل درست واشه فإن كان والدك إنما أوصى بجمله في سبيل الله عز وجل اگه پدرت فسيات كده كدر الله الله عز وجل واشه چه خوب عمل نيكيه فإذا رأيت قوم المسلمين يغزون قوما من المشركين فاتفع إليهم الجمل ديديك مسلمانان جم شدن برعليه مشركين ميتوزن ومي جنگن باشون بده بهشون شطور. دیگه نیاز به سال نداره. این صورت مسئله اول. مسلمانانی با مشرکین دارن می جنگن. شطور بده مسلمانان تا با امون مشریکین بجنگن. صورت مسئله که واضحه وسیعت پدرش. صورت مسئله دوم. اینی که مسلمانانی با مسلمانان دیگر دارن می‌جنگن. حالا چی؟ آیا بدم بهشون یا ندن؟ مسلمانان دارن با مسلمانان دیگر می جنگن. مسلمانان با مشریکین مشکلی نیست. فی سبیل الله. بلکه مسلمان‌ها با ها اینجا به همین این یا این جوان این سوال براش پیش اومده بود جنگ عبدالله بن زبیر جنگ داخلی بود نه جنگ با مشرکی عبدالله بن عمرام فتواش بر این بود که ها وقتی که روبروی دیگه قرار میگیرن، با همدیگر می جنگن این فی سبیل الله نیست بخاطر همین چی میگه میگه فإن هذا وأصحابه المسلموت و یاران و دوستانش از عبدالله بن و ارتشش فی سبیل غلمان فی سبیلی غلمان و قوم ایهم یضع الطابع اینا دارن با کسانی مثل خودشون جوانانی دیگر از مسلمان ها دارن با هم دیگر میجنگن که کدوم یکی حاکم بشه رهبر بشه ولی امر بشه برحک دارن می جنگن الطابع منظور انگشتره منظور از انگشتر کنایه از حکمه یعنی اینها دنبال حکمن دنبال رسیدن به حکومت هست و این یک فتنه بود مسلمان ها همدیگر را بکوشن به خاطر رسیدن به حکومت و عبدالله بن عمر فتواش بر این بود که انسان در این فتنه ها باید دست بکشه و کوتاه بیاد قال المؤلف رحمه الله حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني زيد بن وهب قال سمعت جريرا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل دي بيسو أشتاد پنجمين حديث أزا حديث سهية مفرد من بخاري حديث جرير رضي الله عنه أزا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن دوشته حديث در بخاري مسلمة من لا يرحم الناس کسی مردم رحم نکنه با خوبی با لطف و مهربانی با آنها تعامل نکنه لا يرحم الله عز وجل الله رحمش نمیکنه رحمتی به مردم نداشته باشی الله رحمت نمیکنه این شاید اشاره از بخاری باشه نسبت به اون بابی که گذاشته و گفته عبدالله بن عمر یا ای بنی این از باب ترحمه دلسوزی است ای فرزندم انسان از باب ترحم میگه ملاتفه میگه با لطف، با جوانمون، نوجوانمون، با فرزندانمون با لطف صحبت بکنیم با رحمت باشون تعامل داشته باشید نه با قصفت قلب، با سنگدلی، با خشونت هر کسی برای خودش احترامی داره، جایگاهی داره ابن بطال در شرح این حدیث میگه این حدیث دلاغت بر استعمال رحمت در تعاملمون با جمیع خلقه چه کافرش، چه مؤمنش، چه حیونش چه برده، چه کنیزش باید با تمامی مردم تعاملش با رحمت باشه من لا یرحم الناس نگفت مسلمان، نقف مؤمن با همه مردم تعاملت با رحمت باشه تا اینکه تو مشمول رحمت الهی باشی تا اینکه تو مشمول رحمت الهی بشی حالا به خاطر همین هست که مولانا به این حدیث سناد میکند در باب کمک و یاری رساندن به اونهایی که مصیبت زدن سیل زلزله هست. کافرش مسلمانش باید به دادشون برسی داد یک وظیفه انسانی مسلمانه اسلام این رو به ما میگه حالا هرچنگ که الان شعارهای انسان دوستانه و نمیدونم حقوق انسان و حقوق بشر و بشر دوستانه و این همه مجرد شعاره دین ما یک دین عملیه بحث رحمت به بشر رحمت به خلق رحمت به کافر و مؤمنش این را رسول صلی الله علیه وسلم سال لقب به ما توصیه کردن نه تنها به انسانش حتی به حیوانش حتی به حیوانش الان میاد احادیث که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید زنی اهل تهجد و اهل عبادت به خاطر گربه ای کشتن گربه ای جهنمی میشه زجرش میده نمیذاره که گربه حبسش میکنه و نمیذاره که بره آب و علف چیزی بخوره تا اینکه میمیره به خاطر گربه ای رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه زنی جهنمی شد زنی جهنمی شد چی داره یادم میمونه رسول الله صلی الله علیه و سلم رحمت و قال المؤلف رحمه الله حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك قال سمعت قبيصة بن جابر قال سمعت عمر رضي الله عنه أنه قال من لا يرحم لا يرحم ولا يغفر من لا يغفر ولا يعف عن من لم يعف ولا يوق من لا يتوقى وحدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن قبيصة بن جابر عن عمر رضي الله عنه قال لا يرحم من لا يرحم ولا يغفر لمن لا يغفر ولا يتاب على من لا يتوب ولا يوقع من لا يتوقع ديسة اشتادو ششومين حديث واسر از اوصاري كمان بخاري رحمه الله در حد مفريات ميكونة از مرم خطاب رضي الله عنه كمي قياد من لا يرحم لا يرحم نفس حديث قبل يبوت من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل من لا يرحم لا يرحم أي لا يرحمه الله خلصي كنا الله جل وعلا رحمتي ندرش دبوشة نسبة لا يرحم الله رحمش نميه كنا مش مين قرارش ولا يغفر من لا يغفر بخشينه گناهان شخصی که بخشش نداره خطا کار نمی بخشه کسی در حقش بدی کرده اون نمی بخشه ولی اغفر من لا بخشیده بخشیدن نمیشه برای کسی که نمی بخشه و در حدیثی داریم از باب توصیه رسول الله صلی الله علیه وسلم برای که ما مشمول اغفرتی الله واقع بشه میفرمایم اسمح یسمح لك سماحدش تو بخشش هستش به ببخش ما دردبرا حرف کن ازشون تو اینکار لاتر هم به بخشیدی بدی بیاد کرد آلا با دشنام دادن، ناسزه گفتن، با تندی برخورد کردن اسمح، سماحت داشته باش ببخشش، او را ببخش او را بخشیدی پاداش داری، بی پاداش نیست یسمح لک، الله ترا میبخشد و لا یعفع من لم یعفو و لا الله کسی که عفنه میکنه از مردم خود حق حقوقش رو کامل بگیره انتقامش رو میخواد بگیره از این و اون کسی که دنبال انتقامش در این دنیا در اون دنیا اون عقوبتی که برش واجب شده ازش عفو نمیشه مستحق عقوبت خواهد شد چرا چون خودش عفو نکرده چون خودش اینجا دنبال انتقام و عقوبت بوده اونجا هم اون عقوبت ازش عفو نمیشه و عقوبت میشه و سزا اون اعمالش رو خواهد دید پس عفو از مردم بخشششون گذشت سبب میشه که الله اون از انسان روز قیامت بگذره عقوبتش نکنه حالا اینجا چیزی که یاد نشده که مثلا طرف طلب بخشش بکنه ولی خب مقام بین شخص و الله جل وعلا یعنی نیاز نیست که باید اون شخص بیاد طلب و درخواست بخشش بکنه مثلا من میگم که فلانی رو بخشیدم هرچند از من طلب بخشش نکرده من به بخشام مشمول این حدیث واقع هم شد بخشیدم طلب بخشش نکرده چون بخشیدم الله مرا میبخشه چون عف کردم الله از من عفو میکنه ولا يوقى من لا يتوقع وقایه پناه ستره کسی که خودش رو نکنه از گناه معصیت خودش دور نگیره آتش میدونی میسوزونه خودتو دور نگیری ازش لا یتوقع و لا من لا یتوقع کسی که خودش را دور نگه نداشته وقایتی بین خودش و اون گناه و معصیت قرار نداده گریبانگیرش خواهد شد مبتلا بهش خواهد شد رفتی تو آتش میسوزی لا یوقع من لا یتوقع کسی که از گناهان و از معاصی دوری نمیکنه بهش دوچار میشه به عقوبت الهی دوچار میشه لا یوقع یعنی در وقای از عذاب و خشملایی واقع نمیشه کسی که خودش از گناه معصیت دور نمیگیره بین خودش و اون گناه فاصله و وقای قرار نمیده چطور من فاصله قرار بدم بین خودم و گناه توی موبایلم گذاشتم برنامه از اون برنامه های فواصل اجتماعی نه تواصل اجتماعی فاصله ها هست هرچنک اسمش گذاشتن تواصل و وصل کردن ولی وصل نیست فصله انسان از پدرش، از مادرش، از خانوادهش، از همه فاصله میگیره با این برنامه ها. میشه. حالا چه واتساپه، چه تلگرام، چه اینستاگرام، هر برنامه ای که هست. انسان مشغول این برنامه ها میشه به حدی که جلوی پدرش و مادرش نشسته و موبال لحظه شده. این زشته. رسول الله صلی اللہ علیه وقتی که اصحاب و یارانش میومدن اگر چیزی دستشی بود میانداخت که نشه. انشالله خواهیم داشت از جمله آداب دوست و رفیق کنار هم دیگه نشستن هر کدوم موبا دست گرفتن انگار که نه انگار بعد از سالی و روزی سالیانی به همدیگه میرسن رسن آخر جلو همدیگه نشستن هر کدوم سرش یلاک خودشه. زشتیش بهجاش و اون فاصله ها به جاش. این فاصله هست بعد ازش برحذر باشه. فاصله هست از همدیگر با این ادات و فاصله هست از بهش الهی با اون گناهانی که ما خودمون مرتکبش میشیم به عدواتش را ابزارش را در اختیار نفس اماره به سوء خودمون قرار دادیم این نفس لاماره به سوء. نفس اماره به سو هست رسول ها سالسان هر کسی قری داره شیطانی هست بهش میگه کار بد را انجام بده برنامه را جلوه رود گذاشتی بعد از این صفحه به صفحه دیگه میری این دختر اون دختر بعد میخوای تمع نکنی این العین تزنی میخواد زنا هن نظر در زنا نیفتی. محاله. تو خودت رو پرهیز ندادی، پرهیزگار نبودی در مقابل اون گناه، پرهیزگار نبودی، پرهیز خودت رو ندادی، وقایه قرار ندادی بین خودت و اون گناه. چطور میخوای از عذاب و خشم الهی در امان باشی؟ میگه میشه. نمیشه. تو ادوات زن و ابزار از را در اختیار نفس اماره به سوی خودت قرار دادی. اساس اون ابزار را باید از بین ببره، وقایه بار قرار بده. حالا شخص می‌گه من دارم دعوت میدم، علمان دار گفتن دعوت بدی. دعوت بده پوسیره درست کن، اکسی درست کن یا مطلبی بنویس، بذار حذفش کن وقتی که خاصی دوباره برنامه رو نصبو بذار برو بیرون. نظر شیطان تو رو وسوسه بکنه. اون ابزار فتنه و فساد را از بین ببر. نزار اون شیطان تو رو گمراه بکنه. اون شیطانی که تو وظیفت اون رو به دشمنی بگیری و اتخذه و الله جل وعلا توصیه میکنه. تو اینجا به دوستی او را گرفتی، یار خودت قرار دادی. این برنامه شده یار شیطانی، دوست شیطانیت. چه خیری توشه این دختر اون دختر ببینی؟ جز اینه که رسول الله صلی اللہ علیه وقتی که میفرمه عین تزین و زنا نظر بعد میگه و نفس تتمن ذلك و تشتهی. و نفس، نفس تمنی میکنه و تشتهی. شهوته. میگه میشه مرد باشه و شهوت نداشته باشه. سمبا جو در میاد. مردانی گیه و بیشهوتی حس غریزه است گذاشته من لا يتوقع و در روایت لا یتاب علی من لا يتوب کسی که توبه نکنه توبه نمیشه یعنی توباش پذیرفته نمیشه توبه این نکرده که توباش پذیرفته بشه توبه نداره و در روایتی من لا لا یتاب علی توبه نکنه توبه نداره توبه نکرده که توبه داشته باشه توبه شرط و شرتی داره شرط توبه ندامت پشیمانی است دست کشیدن و بعد دو جبران با عمل صالح بودن نه مجرد اینکه تو بکارم از صفر الله فرداش همون آش و همون کاسه امروز توبه کرده که دیگه نگاه فیلم های نکنه نگاه فلان نکنه بعد فرداش دوباره همون آش و همون کاسه همون ابزار دوباره هست همون ادوات انحراف دوباره هست سر جاشه این تو به نیست تو به اینه که دست بکشی و به جای اون ادوات و ابزار انحراف جایگزین براش قرار بدی عمل صالحی قرآم بخوره شان مردم قرآن نمیخونن؟ چون جلوش تلویزیونه چون جلوش زنان سر لقته برهنان، ثم قصت قلوبهم فهیا كالحجاره اوشاد قص و شدن دلها نقطه های سیاهی در آن ایجاد شده همونطور که رسول الله صلی الله علیه و سلم با هر گناهی نقطه سیاهی بر روی قلب گذاشته میشه تا اینکه قلب سیاه بشه قلب که سیاه شد دیگه جای نور قرآن درش نیست نمیتونه شخص قرآن بخونه قرآن برش سنگینه شبش سوره تبارک هم نمیتونه بخونه که دو صفحه بیشتر نیست 3 دقیقه بیشتر وقتش نمیگیره 3 دقیقه برای یک سوره تبارک دادن براش جبره شما به من بگید یک ساعت با واتساپش میشینه نه یک ساعت ده ساعت نشسته خسته نشده ولی 3 دقیقه زورش میاد که یک تبارک بخونه زورش میاد وترش بخونه چگونه توفیق توبه پیدا بکنه چگونه الله توبهشو بپذیره توبه شرط و شروع داره توبه با ادعا نیست با لفظ نیست تو بگی توبه کردم از سخط الله استغفارت باية باية با عمل باشه عمل صالحي كي جايگوزيني عمل زشتت باشه قال المؤلف رحمه الله باب الرحمن في الارض حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا زياد بن مخراق عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله إني لأذبح الشاة فأرحمها أو قال إني لأرحم الشاة أن أذبحها قال صلى الله عليه وسلم والشاة إن رحمتها رحمك الله والشاة إن رحمتها رحمك الله 153 سومین باب از باب صحیح عدم مفرد گفته امام بخاری رحمه الله باب ارحم من فی الارض رحم كل بر اون کسی که بر روی زمینه حیوانش و انسانش هر جانداری هر چیزی که الله در اون روح گذاشته زندگانی گذاشته حتی اون درختش نه اون حیوانی که داره نفس میکشه حتی اون درختش حالا قادمات احادیثی که رسول الله صلی الله علیه و نهی میکنه از کندن درخت درخت کنار مثلا تو صحرای بیابونی جنگلی دشتی در ماده درخت نکنش حیوان از اون درخت میخوره زیر سایهش شخصی استراحت میکنه اینا حقوقه از حقوق طبیعت از حقوق درختان از حقوق حیوانات از حقوق انسان ها که شرع ما توصیه کرده به ما شخصی میاد نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم میگوید میگه یانی لا اذبح الشاته فارحمها بوزره می سر بزنه ترحمش میشه وقال إني اني لا ارحم الشاء أن أذبحها ترحمها بشكل بوزو گوسفند رو سر بزنم دلش نمیاد در دل رحمه ازون اصطلاح آدمیه یعنی خودمونم زیاد به کلمه فدایی در رحمه خیلی در دل رحمه دلش نمیاد هیونو سر بزنه رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام فرمودن دو بار تکرار میکنن این نمونه رحمتها رحمك الله اون بوزو گوسفند رو اگر بيش رحم بكوني الله رحمت میکنه خب چطور بو درهمش میکنه بزرگ گوسفند رسول الله صلی به همون یاد میده یاد مونده که چطور اون گوسفند را رحمش بکنیم روزی رسول الله صلی الله علیه و آله عبور می‌کنه شخصی را بینه که پاش را گذاشته رو گردن دی و هو یحد شفرته چاقوشو داره تیزش می‌کنه جلوی اون حیوان و هی تلحظ الیه بصرها اون بزرگ گوسفند داره نگاش می‌کنه نگاه اون چاقو که داره جلوش برانش می‌کنه فقال افلا قبل هذا نمی شدد قبل از این این و این چین برانش بکنی. توريد و انطیت هم موتتین میخواید دوبار او را بکشی با روانشداری بازی میکنی. دوبار او کش میخوا دوبار او را بکشی با این کارت چاقوت برانش کن ولی نه در جلوش. این از رحمت هست نسبت به اون حون در حدث دیگر صل الله عليه وسلام فرمایان. من الرحم ولو وال وذبيحة رحمه الله يوم القيامه. حتی اگر اون چیزی که میخواهی سر بزنی گنجشک باشه هر چند که اون چیزی که میخواهی سر بزنی گنجشک باشه رحمش بکنی رحمش بکنی با درست سر بریدن نه با اون کاری که بچه ها میکنن دو شاخ رو میدارن بعد میزنن یا فنگ بادی میزنن بعد داره جوم میده اون گنجشک بعد سرشو با دست میگیرن از تنش جدا میکنن این ذبح نیست این میته است این مرداره حرام فعلت حرامه خوردنش هم حرامه این حقوقه که الله برای خلقش گذاشته اون چیزی که آفریده همچنین این رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنه از این که انسان حیوانی رو غرض قرار بده، گوشتنده میخواد رو باش امتحان بکنه، هدف قرار بدی، درص قرار بدی، حق نداری و این ابس در صیادو هست. میرن توی طبیعت، تر خشکو با هم میسیزونن. رفته حالا سید بکنه. حالا گوشتی مثلا نداره بخوره. رفته آهو بزنه گنجش رو میزنه خرگوش رو میزنه نسل حیوانات رو تو طبیعت منقرز میکنه این نسکشیه این نسکشیه این اسرافه و این هدف قرار دادنه اون جانداره و از اون چیزایی که شر منعمون کرده خیلی جه انسان از باب تفریح انجام میده نه از باب نیاز گوش داره غذا داره ولی تیراندازیش و سیدش شده چی؟ تفریح خوشگزرانی بعضی عکس نها کنید آهو زدی. میکنه آهو زده گوش نداشتی بخوریم بی آب و غذا بودی این افتخار نداره این افتخار نداره تو نیازمند اون گوشت اون حیوان نبودی نیازمندش نبودی اصلا محاسبه میشه در مقابل اون کاری که بیهوده انجام میده عبس انجام میده کارای عبس بیهوده است. قال المؤلف رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن منصور سمعت أبا عثمان مولى المغيرة بن شعبة يقول سمعت أباه هريرة رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول لا تنزع الرحمة إلا من شقي دي حشتمين حديث حديث أبو هريرة رضي الله عنه وغفر الله له ولأمه که میگوید شنیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماشت شنیدم رسول الله صلی الله و سلام که صادق و مصدوق بوده صادق بوده در اقوال و در گفتار و در کردارش صادقه صادق در گفتار و کردارش شنیدم از کسی که صادق بود در گفتار و کردارش درستگو بود راستگو بود المصدوق کسی که تصدیق شده بود تصدیقش کرده بودن مردم باورش داشتند مردم اقرار داشتن به صدقش دیگران او را تصدیق کرده بودند القاسم چون فرزند بزرگترش قاسم بود رسول الله صلی الله علیه وسلم. سلم کنیا ابو القاسم صلی الله علیه و سلم میگوید لا تنزع الرحمه من شقی لا تنزع ای لا جذب لا تقلع لا تسلب گرفته نمیشه از قلب کسی رحمتی مگر به خاطر شقاوت مندیش لا تنزع الرحمة، یعنی از قلب کسی گرفته نمیشه اون رحمت، از رحمت محروم نمیشه، مگر به خاطر الشقابات مندیش. چه موقع انسان شقابات مند با کفر، با بدعت، با فسق بر حذر باشیم. از هر کفر و شرکی انسانم باید پس بدونه که چی کفر و چی شرک انجامش نده. کفر و شرک انسان را شقاوت من میکنه. بدعت انسان را شقاوت من میکنه کل محدثت بدعة و کل بدعة ظراله و کل ظرالات. باید بدون چی بدعته رسول اللہ انجام نداده انجامش نده و چه معصیته گناه، که سبب مندیش میشه از فسق و انواع فسق و فجور از زنا و چشچرانی و و الى آخر غیبت و نمامی و دروغ اینا اسباب شقاوتمند شدنه اگر تو شقاوتمند شدی فلمه زاغو ازاغ الله قلوبه هم این رحمت ازت گرفتی میشه زیغ از تو پیش میاد تو دچار زیغ شدی تو اون اعمال شدی که شقاوات من بشی با اون اون عمالی که خشم الهی بر اونها هست از معصیت و گناه و بدعات تو دوچار آن شدی در زیغ و انحراف میفتی رحمت زد گرفته میشه از قلبت گرفته میشه و من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ظن هر کسی روی گردان بشه از الله جل وعلا با انجام دادن گناه شرک معصیت بدعات و من اعرض عن ذکری اعراض بکنه اصطاعت و عبادت الهی فإن له زندگی در دنیا و آخرت سختی خواهد داشت همراه با دلتنگی و بدبختی و خاری و ذلت و ضنكا. خار زلیل بدبخته دلخوشی در این دنیا نداره حالا خواهد اومد احادیسی که خواهیم خون در این که گناه ما سبب اختلافات ماست گناه ما سبب دوری ما از هم دیگر و از بین رفتن دوستی و خوته خواهد آمد گناه ما سبب اختلاف ما با همسر ماست با بچه ما تا جایی که بعضی از علما میگه که اگر من گناهی انجام بدم آثارش در حیوانم خودم هم میبینم میدونم به خاطر اینکه اونجا یک بدی کردم اینجا این حیوانم اینطوری مثلا لگدم زده یا میگه در تاامون حتی در حیوان با حیوانم هم میدونم که این مصیبت یا این چیزی که بهش دچار شدم به خاطر گناه من بوده این خودشون رو محاسبه میکردن مراقب اعمالشون بودن ولی امروز نه از بس که گناه انجام میدیم نمیدیدیم از کجا داریم میخوریم؟ به خاطر کدام گناهه شب و روز مشود دلتنگی و مصیبت هی داریم میخوریم ها ولی دنبال اصلاح هم نیستیم تصحیح روندمون کارمون رفتارمون نیستیم در این دنیامون سختی میکشیم در آخرت بدتر از اون خواهیم داشت با در عبرت بگیریم. سبحانك الله بحمدك سبحان الله بحمدك وصل اله له على محمد وعلى على محمد